السيجل الله رب لا جل ولا إن الحمد وتزودوا فإن خيرا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 و علال ابراهیم اینک حمید مجید بردره محترم اینسانی که قصد حج میکنه اول بفاهمه که بالایزو حج فرض است یا نه بسیاری کساس خدا تکلیف بیجای جای میتن از رحمت خداوند پنج بنای مسلمانی سره فیصداران پنج بنا فرض است سر فقیر سه تاش فرض است سر فقیر زکات و حج نیست و در روز قیامت محاسبام نمیشه اینال بعضی کساست که خدا تکلیف میته و زامت میته و قرض میکنه در خانش مثلا نفقه نیست، مصرف نیست بسیاری کسا غریب است مثلا بر خانم بیچاره خود تمام روز دال خورده دال خورده نفس از رو میکشه ای باز به حج میره نه اول انسان فکر بکنه که آیا من حج فرض هست باید حج فرض نیست اگر فرض نبود وقتی که خداوند سرت فرض نکرده که تو چی خودت زور خدا و عبادیگرانم با تکلیف میسه دوم سخنشی هست که بفاهمه که حج یز اون صحیح میشه با کدام شرایط صحیح میشه سوم اون سوال ایره بکنه که اگر حج ما صحیح میشه، با چی صحیح میشه میگه با فامیدن فرایز واجبات سنت ها مستحبات مباحات فامیدن حرام قو ممنوعات، قو میدان مکروهات. بیاین بفهمین که نشه که تو مثلا مردم در عرفات است و قراش چی خواه کردی فرض از پیش خطا خورده حجش باطل میشه و مصرف نافی کرده. باید که چی فرض است، چی واجب است. اگر ترک فرض شود چی میشه؟ اگر ترک واجب میشه ده کدام روز میشه؟ دیگه ایست که اسکه بفهمم که به چی شرایط حجیضی قبول میشه؟ من چی که حجم قبول شود؟ و که هر عبادت جایشه بفارمه که فلانی عبادت در کجا میشه فلانی در کجا عدا بکنم فلانید. خب علما میگن خود حج در لغت بمانای قصد است قصد کردن، یعنی قصد بزرگ حج در لغت منای قصد است و در اصطلاح شریعت اسلامی حج چی رو میگن؟ میگن که زیارت کردن اماکن مخصوص در وقت مخصوص با مناسک مخصوص سایی حج به سه, سه شد, شد اول زیارت کردن جاهای مخصوص است به نها در جای حج نمیشه حج در اونمون جایه است که الله جل جلاله جل بر ما گفته که اینی تواف بیت است اینی صفا و مروه است اینی مثلا عرفات است بران با جای حج انسان بشناس دوم وقت مخصوص است در کل سال حج نمیشه در کل سال عمره میشه اما حج فرضی از خود وقت مخصوص داره از این خاطر انسان باید وقت تزور در نظر داشته باشه که از چه وقت شروع میشه و چه وقت ختم میشه در کدام روز در کدام سات در کدام عبادت باید بکنه و عبادت های مخصوص داره که با دیگه عبادت ها فرق اگر یک نفر حج میکنه میگه فضیلت حج است فضیلت حج اولی است که وقتی یک نفر حج میکنه الله جلاله روحو سرش ای حج فرض گشتنده بنام ادای یک فرض طبعاً ثواب بسیار زیاد داره و پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که من اتا ها البیت کس که به این بیت یعنی به بیت الله شریف آمد برای حج کردن فلم یرفست ولم یفسست این رفز رفز که میگن که یعنی حرکت های شهوت انگیز و سخن های شهوت انگیز نگویه و نکنه حتی با امسر خودش و نمیفسق و کارهای فاسقانه رو نکنه کار فاسقانه چیست؟ چی کی فاسق است؟ غیبتگر فاسق است دروگوی فاسق است انزانی که ناقی ناقی مردم جنگ میکنه فاسق است انسان که دشنام میتر فاسق است پس ای گفته که کارهای فاسقانه را نکنین یعنی غیبت نکنه دروغ نگویه جنگ و جنجال نکنه بدگویی کس را نکنه آبروی کس رو نریزانه دش... کس دشنام نته در این صورت میگه پیغمبر که ولم یفسق رجع کما ولدته امه میگه این دوباره بر میگرده خداوند اتو گناه های زیر پاک میکنه مثل که پس عمو قسمی که از مادر نو تولد شده لاکر کدام حاجی حاجی که نیت درست داره حاجی که در زیر پای خود گوسفند حلال نمانده که بکنه قسم حاجی که کارای فاسد نکرده حاجی که بگه نه ما پسی حاجی دارم لکن پسی 500 پیس داره جای نماز و داسیر برنجا ندارم ازی خاطر ما حج نمیره حج از زیر خدا قبول نمیشه چون هر چی حاجی اساس نیست کلامکاریز غرور است ده هشت خود جه نماس دادن مردم فرض نیست ای خو حرام نارواه هست که زیر پای یک کسی یک کسی علال بکنه و خونش در پای زی بزن ای خو کار بود پرستا بود که سابق زیر پای بطا یک حیوان هست با خون ازونه در پای های بطا اگر یک حاجیه با اخلاص با ایمان ای رواج های زشت ترک کرده ای حرور ترک کرده و حج با اونمو اخلاق درست ادا بکنم باز اونو حاجی رجوع میکنم مثلا که از مادرش نو تولد شده و در حدیث شریف دیگه است که العمرت و الى العمرت كفاره لما بينهما هم یک عمرت و عمره دیگه کفاره هست لبینشان چیزی که است و المبرور لیس له جزار الى الجنه و حج مبرور که است دیگه جزای هزی از جنه دیگه چیزی نیست لیکن حج مبرور کدام حج است گفتن که در اون ریاکاری نباشه آجی ریاکار ریاکاری نکنه که دیوالای خودم یک ماپش پیش داشت کده که حج کلان که کل مردم خبر شد آرس وارگرد گرد شاید رو که مردم خبر شد نامش اگه آیی نگفتیش نگوکتش قط چنگام وقتی بود او مهش رفتی مر نمیگه او باز چی نفران نفر نان بتم که باز نام بکشم این هجی مبرور نیست. هجی مبرور است که ریاده او نباشه. از رواجها خود دور بسازد، این هایی که اسلامی نیست. مردم افغانستان او را کشیده. تکبر نداشته باشد، او هجی مبرور است. با اخلاق اسلامی ادا او هجی مبرور است. زبان خود حفظ بکنه. او هجی مبرور است. گناه و معصیت به او نباشه. چیزی کسا در جوریانه حج غیبت میکنن جنگ میکنن غال مغال میکنند یه خود تیله یه حجی نیست مطابق قرآن و سنت باشه. از دل خود بر خود عبادت نکنند پرسان بکنند که چی عبادت هست چی مخالف هست با قرآن و سنت از چیزی که مخالف است از دوری بکنند از بدعتها دوری بکنند بعضی کساس یک اکتکره در الله شریف تو دادیو بازر کارد ای خود میچست بانه و دیگه خود میچست بانه خانه که وقتی وقت تأثیر داره که ایمان داشته باشه ابو جل خانه شروع بروی که بود و چی تاثیر کرد؟ که ابخه بار از سنگ است و خشت است و سمت است و فلانی است اونجا وقتی که تو میری که قلبت با خداوند نسی حتی حجر الاسفاد ماش میکنه بگه یک سنگ توی یک سنگ سیاسی حضرت امرو دلتالون ساشون گفت تو یک سنگ سیاسی نه برای من نفره میتونی و نه زرار سنگ سنگ چی میتونه برای کسی نفره و فقط به فقط که پیغمبر خدا تا رو ماش کنه ما هم تا رو ماش میکنیم این باقیده قوی میشن باقیده توحید میشن خب یک کسی سوال کردم میگه که حج با کدام شرایط بالای کسی فرض میشه؟ یعنی اون شخصی که سرش حج فرض میشه اون شخص چی شرایط داشته باشه؟ گفته که اول مسلمان باشه در صورتی که مسلمان نباشه سر از اون حج فرض نیست بالغ باشه از این خاطر سر طفل حج فرض نمیشه عاقل باشه سر دیوانه حج فرض نیست آزاد باشه توانایی داشته باشه یعنی زاد و راحله داشته باشه زاد و راهله چی میگن زاد و راهله منظورش مسارف حج مسارف رفتن مسارف بازگشت و نفقه فامیل خود داشته باشه اون تو کاری رفته به حج تو کاری از گوش نگی میمونه حجتوره خدا قبول نمیکنه بلکه باید مسارف رو فامیل کامل خود داشته باشه از اضافگی از مسارف فامیل خود او باید به حج بره سوال دیگه یه است که ارکان حج کدام است که اگر او ترک شوه حج باطل میشه در نزد احناف دو چیزه گفتن فرض است در حج یکی وقوف در عرفات در روز عرفه اصطا شدن در میدان عرفات ای فرض است اگر کس تیاریش ناوخ شد مثلا در روز عرفات اونجا رسیده نتانست حج هزی باطل شد بسی باید قضایی دیگه حج اصلاح شدن بر عرفات ای فرض است. دومی فرض از تواف افاده میگن. تواف افاده است که بعد ایز که شیطان میزنن باز باز روزیت تواف میکنن. او را تواف فرضی تواف افاده میگن. و بعضی از علماء در مذاهب احناف میگن که احرام بستن واجب است و بعضی ها گفتن که بعضی از مذاهب میگن که احرام هم فرض است. پوشیدن احرام. و ای که اگر کسی کدام رکن ترک میشه پیشش یا تواف افاظه ترک میشه یا اقوب در عرفات باز حجزی باطل میشه چون اید تا رکن حج حجزده واجبات حج چی چیزها در حج واجب است؟ یکی علما میگن که بستن احرام ای واجب است اگر کسی حج کرد بدون احرام با ازی زفع یک حیوان باید ها بکنه یک حیوانه. چرا در رکن حج فرض حج کس ترک کرد حجش باطل میشه اما اگر کس فرض ترک واجب ترک کرد با سرزید میگن دم لازم میشه دم چی مانه؟ یعنی یک هیوانه هم میکنه کدام چیزا واجب است؟ کردن احرام واجب است سعی بین صفحه و مربع واجب است زدن جمرات سیگانه که شیطان رو میزنید این واجب است و دیگه وقوف در مزدلفه ای واجب است ماندن در منا بعد از اید تا ایام تشریف ای واجب است توافل وداک است ای واجب است و وقتی که از هش خلاص میشه حلق یا قصر میگن حلق یکی مثلا مویای خود کم میکنه و قصر حلق تراش میکنه و قصر است که کوتاه میکنه یک افغانستان ای بر مردهاست تراش کردن زنا تنها قصر است یک آجی افغانستان سبی رفته به از ای که بر ما روزه کس قصه کرد گفت که بخاطر از ای که خوب اقتصادی کار کن از قد خود ماشین ریش پین پگی و پلی ریش هم برده مادر خودت پاک زفا سرش تراش کرد چرا چونه آجیسته کل کردن یا کم کردن سر خودم کل کردم و از مادر کل کردم خو انال هر چند قسم است یکی حج تمتع است یکی حج قران است و یکی حج افراد است چی مانا حج افراد حج افراد اور میگه یک, یک نفر از وطن خود حرکت میکنن تنها افراد و مانند فرد تنهایی تنها حج نیت میکنن عمره را نیت نمیکنه میکنه. نیت کردم از همین جا در دل خود چیز میکنه که من نیت حج فرضیه میکنم این افراد میگن حج قرانج میگه قران این میگه که هم حج نیت میکنه و هم عمره را اردوش نیت میکنه قران مقارنه یعنی پیوست یعنی حج و عمره رو اردوش پیوست میکنن بدن وقتی که از وطن خود جرفت عمره میکنه بعد از عمره دم احرام خود هست پیوسته واس حج میکنن خود احرام کشیده نمیتنن اما حج تمتع رو میگن حج رو یعنی که از لذت بردن یا تمتع متع گرفتن از چی معنی که از این جه نیت عمره را میکنه وقتی که وجرفت عمره میکنه از عمره که خلاص شد احرام خودم میکشن میباشه می بجا تا روزی که مراسم حج شروع میشه بالباس های عادی خود میگن اینه حج تمطو میگن بینان افراد که تنها حج نیت بکنی قران که حج عمره را با هم مقارن پیوست بسازی و حج تمطوی است که اول از این نیت داری که هم عمره میکنی هم حج میکنی لکن به نیت تی که اول عمره میکنیم باز خودم حلال میسازیم و باز بعد زور که هم روز بالباس حادیت میگردیم باز حج فرزیر وقت باز دوباره احرام این مانای اقسام حج است یکی تمطو است و یکی قران است و یکی هم افراد است خب اگر کسی اکثرا حاجی های افغانستان حج تمطو میکنه وقت از چه... از چه وقت شروع میشه؟ اله الازی شروع میشن؟ از اول شوال، از اول اید سعید فطر، وقت طما تو شروع میشه، امیل اگر یگاجی سر میکنه، میره در سال نیتش ایست که ما حج طما تو اول میره عمره میکنه، بازی که عمره خدا خلاص کرد، خدا حلال می سازه، بازو باز، تا وقتی که روزه هفتم و هشتم میرسه، بازو وقت دوباره احرام بسته میکنه و باقی مانده حج خدا میکنه. یک کسی سوال کرده که مکانی که باید آجی احرام بسته بکنه کجاست خب اینجا سابق مردم افغانستان از طریق عراق حج میرفتن کاروان ها که بسته میشد ایران میرفتن باز ایران اونجا یک منطقه بود به نام بنامه زاتعق میگفتن زاتعق کسی برای حاجه های افغانستان چون اونجا چی میگن؟ میقات میگن میقات ها فرق میکنن نام میقات ها یک میقات زول حلیفه نام داره جحفه نام داره یلملم نام داره قرن المنازل است و ذات ارق برای چهار طرف مردم دنیا لکن بر مردم افغانستان ذات ارق بود که باید از اینمی جای میقات چیزی باید احرام بست بکنی یعنی از این منطقه باید بدون احرام تیر نشی لکن حال های افغانستان چون که تیاره میرن بنائن بسیاری در خانه خود احرامو بسته میکنن و بعضی کسا هستن در میدان هوایی خیمه می در داخل خیمه بسته میکنن و بعضی کسا که می مثلا تایره جا دوبای توقف داره بازی مثلا در دوبای یا در شارقه شارجه اون جه هم احرام خود رو بسته می کنن. منطق توسط استاده و توسط مسئولین تایره برشان گفتا میشه که قبل از میقات باید چی کنم احرامش بسته باشه. خب انسانه که احرام بسته میکنه احرام چی هست؟ احرام باید ما شما فرق بکنیم بین احرام مردها و احرام زنها احرام مردها احرام چی میگن در زبان عربی؟ میگن ثیاب غیر المخیط لباسی که دوخته نشده باشه بر مردها یعنی دو پارچه هست باید یک پارچش عورت خود سطر ستر میکنه که باید از زیر ناف تا زیر زانو ستر باشه و دیگه چی که باز سر شانه های خود میگیره که با در انگ... وقت طواف شانه راست خود برهنه میماند و سر شانه چپ خود میپرده اینی دو لباس احرام است دخته نباشه دختگی نباشه اما از خانم ها چطور است برای خانم ها لباس دختگی اجازه هست بنان احرام از لباس عادی دختگیشان است منتها اونا هم اگر لباس سفید باشه بر زرها علما گفتن خوبتر است وقتی که لباس نادخته گفته شد بنان هیچ چیز دختگی اجازه نیست که آجیز استفاده بکنه در وقت احرام مثلا زیر پیرانی دو پوچیده نمیتانه زیر ازاری پوچیده نمیتانه نیکر و یفا کمربند اضافی پوچیده نمیتانه احرام خود گریز زده که گریش کنه بود پوشیده نمیتانه باید چبلخ استفاده بکنه تنها علما گفتن خاطر ضرورت یک چیز را به نام همیانی میگن چی میگن کمر است که در بین از او پاسپورت و پیسه و یک پای خود در کمر خود بسته میکنن اون را به خاطر ضرورت اجازه دادن اما دیگه چیزها برازی هر چیزی که دختگی باشه ناروا هستن خب بسیاری کسا حاجه افغانستان سر نیت زیاد چی میکنن که من چه قسم نیت بکنم در احادیث کدام لفظ صریحی که نیت حج باشن نامده چون از دیدگاه زبان عربی نیت نیت قلب است اونمون نیت قلب تو اعتبار داره. برن وقتی که احرام بسته کرد قلبیه میگه لبیک الل اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملك لا شریک لک تلبیه رو که گفت آغاز شد و که باز اونجا گفته میشه که بسیاری چیزا سرش حرام میشه که از او باید چیز کنم دوری بکنم خانم ها در حج باید بایکوتار نپوشانن و دستای خود هم پوت نکنن اما در صورت ضرورت گفته که اگر احیانا ضرورت میشه روی خدا میپورن می پوشن اما در نزد علمای احناف پوشاندن زنها، یعنی بی بی هاجی روی خودت باید نپوشانند یک کسی پرسوند که اگر مثلا بی بی هاجی مرض ماهوارش در این وقت پیدا شود که با لباس احرام خود بله محرم شود امی خانم ولی باس خانه که ببی اگر شی حایزه باشه دیگه مراسم حج همه میکنه تنها طواف بیت الله شریف نمیکنه و نماز نمیخونه مثل که یک سرک عادت ماهوار داره عادت ماهوار خود نماز نمیخونه اما دیگه مسائل حج ادگاهش کلش نورمال انجام میده خب قبل از احرام بستن چی باید چی کارا رو باید بکنیم پیش که اینکه احرام بستم کردن پیش ازی اول باید غسل بکنه سنت است غسل یعنی اگر نکنه هم چیز نیست غسل بکنه یا وضو بگیره سنت است موهای زائد وجودش مثلا شرگاه جای خدا پاک میکنن ناخن های خود چی میکنن بدن خود خوشبوی میکنن و بعد ازو احرام بسته میکنن وقتی که احرام بسته کرد تلبیه میگه لبیک الله لبعیک لا شریک لک لبعیک ان الحمد و نعمت الک و الملك لا شریک لک اینی تلبیه رو وقتی که میگه چی معنا میته ای تلبیش؟ لبیک اللهم لبیک الهی حاضر هستم لا شریک لکه لبیک تو شریک نداری و محاضر هستم به ای که تمامی عوامدت را تطبیق بکنم یک عجی وقتی که در زبان خود میگه که الهی حاضر هستم که تمامی احکام تطبیق بکنم و گناه نکنم و دروغ نگویم در زبان خود میگه لوف و بازم میبینی جنگ میکنه قالمقال میکنه اعصاب خرابی میکنه در زبونت همگو یا در دلت پیدا سنم ای باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سون وقتی که تو گفتی که الهی ما حاضر هستم که احکام تو را 100 درصد سر خود تطبیق بکنم باید تطبیق بکنی اج برادر عزیز هش تکلیف است احکام اسلامی مثلا نماز خواندن تکلیف است ال مثلا تو یه شیشتی چار زانو ریش سفید میکنه که یا پای ما خلاص میشه تا که خدبه میخونه تا که نماز میخونه خسر سختی میاد دیگر حالو پای در بیچاره شیچه پای خدا ما کم گرفتن خب ما میبینیم خوبه تکلیف هست یا در ضعیف است در ر... زمستان میخیزه کتابی یخ حضو میکنه تکلیف است. هشت تکلیف است جهاد تکلیف است. پس ای تک... هر تکلیف برای تشریف است که انسان شرافت و عزت میدهد از این خاطر در هش هم انسان تحمل تکالیف میشه از این خاطر نباید بد اخلاق شونن تو نان و نفر چور میکنن خب تو نو عق سه نفر گرفتی برو دیگه نفر نمیراسه یکم ها کی سرش بشور اومد عللا بدا و اول باید بوی زود شوم. الان من نمونم عللا من بخورم اینجا خود تکلیف قبول نکرد از این خاطر انسان وقتی تکالیف قبول میکنه و اینجا میگه تلبیه میگه الهی ما عذر هستم که احکام تو را سر خود با تو شریک نیست از این خاطر کاری که اون شرک باشه غلطی باشه ما اون رو نمی‌کنم یگاجی میره قرار پیش قبر بی عایشه خدیجه استاد است یا بیبی بی خدیجه برای بچه بته دختر بده برادر محیی زنده‌کننده الله است تو رو بچه و دختر الله میده تو چطور از می ازو میخوای بی عایشه بر خود بچه و دختر برعکس دادا میتونه از این خاطر وقتی که می لا شریک الکلف بیگ خدای تو شریک نداری پس کس خدا، خداوند کس را شریک نسست وقتی که حج رفتی در هر جایی باید بفهمی که من یک انسان موحد استم یک تا پرست استم فقط ایاک عبود و ایاکن است الهی خاص ترا عبادت میکن و خاص است تو کمت فقط زبانت بگیر یا الله یا تغرب آلا شدی بگیر لبیک اللهم لبیک قایان شد بگیر لبیک اللهم لبیک بگیر گپ نزن پس کس دگی نخوای کس برای کس بچه داد پیغمبر بر کس بچه و دختر داده نمیتونه دوست خدا بر کس بچه و دختر داده نمیتونه چون کلگی به یقیده اصلا که محیی زنده کننده. فقط الله جل است. یه سقیدی یک موحد یک آجی یک تا پرست. در چه وقت آجی تلبیه بگوی؟ همیشه باید تلبیه بگوی. در تهره بالا میشی تلبیه بگو. در زینه بالا میشی پایین میشی در بلنده میری باید امیشت زبانت و یاد الله زبان تر باشه چه وقت تلبیه گفتن تلبیه باید انسان نگه یکی خود در وقت ضرورت و گپای که تشنه باشه اونجا خود بخاطر احترام دیگه در وقت سعی بین صفا و مروه و در وقت جمرات اینیا علما گفتن که چه باز دیگه دعاها رو میخونن آیا حاجی میتونه که غسل بکنه بله اگر ضرورت میشه غسل میتونه بکنه و اگر اهرامش بین میشه احرامو خود هم میتونن که احرام چیز هستی بگوا یک والا من به خاطر ازی که چیز نمیشه میشه نه میتونی که بشویشه در وقت احرام چه چی چیزا سر ازی ناروا هست وقتی که احرام چیز کرد وقتی که احرام بسته کرد لباس دخته باید نپوشه سر خوده مردها باید کلاه و لنگی و گپا نپوشه دوادی دو دو دو دو دو احرام یک درس است بیچاری کسایی که مثلا یک نماز خوند نمازت نشد از ازاجی چرا میشه سر نماز میشه لو که اگر کلاه و پوشی علومجی داشته باشی خوبتر و بهتر است ادبش بهتر میشه اما مطلقا تو فتوا که ولا 100 نفر سلوش نماز خد نمازش نمیشه. نمیشه اگر نمیشه خیاضاجیو بعد باید نمازش نشه دیگه گفته که برای هاجیا ها در حالت احرام که نمازهای خدا میخوانن پوشاندن سر برای مردا البته اجازه نیست پوشاندن دستا و صورت برای زنا اجازه نیست برای مردا حو وقتی که کس احرام بسکت شما دوستایتان که حج میره برشان ایگپا را نصیحت ها را بکنید که از عطر و از چیزهای مواد خشبویی و کریب ایگپا در واده اهرام ای جایز نیست دیگه کوتاه کردن ناخون یا تراشیدن سر یا کم کردن موی در حالت احرام نارواه هست اجازه نیست حتی موی سر خدا شانه نمی کنه موی نمیکنه و شانه نمی کنه و کندن مویش برش نیست. کریم یا روغن یا چیزی را که استفاده میکنن مثلا روغن موی است یا کریم روی است یا یک پا هست یا باید استفاده نکنه در حالت احرام در یه وقت نگاه کردن اجازه نیست وقتی کسی که در حالت احرام باشه و دیگر نزدیک شدن با همسرش سخنای جنسی را گفتن و شکار کردن حیوان و درخت و یا یی سدار کندن اینیا کلش در حالت احرام سر حاجی حرام است و ناروا هست خب چه قسم تواف از کجا شروع میشه کسایی که تواف شروع میکنن اول دم پیش حجر الاسود یک خط خط اونجا هست اگر کس تانست حجر الاسود را بوسه بکنه یک عمل مستحب است برادر یک عمل سنت است پیغمبرش سلام کرد لکن کرامت یک انسان بسیار ارزشمنده. بتنه شو که یک نفر به خاطر بوسه کردن حجر الاسود پیغمبرش ممنوع کرده گفته کس کس را ازیت نرسان کس را بویت ازیت نرسان بسیاری کس ها است شانه خدا بند میکنه واسمی قسم میکنه که من زور داشم شانه خدا بند کردم 4 نفر قبلش اش شکستون و رفتم حجر الاسودم واش کردم این کار ناروا و حرام از این خاطر در انسان باید شانه چپش طرفه حجر باشه این قسم دور میخورن این قسم دور میخوره مثلا حرکت میکنه فقط به بالا میکنه اشاره میکنه طرف از دور چون و کاجی 3 میلیون و 4 میلیون است که از حجر الاسفل ماش کردنش بیخیال محاله کس نمیتونه دیگه. دیگه. تاگی که 10 نفر از زیر پای خود نکنند کس نمیتونن کوله با سالگی چون خود همین فشار هاجی آب و که بخوای حرکت میکنه عزیز خاطر انسان ادب مراعات میکنه فقط از قسمت حج تواف طواف حرکت میکنه یکی شوت است و یکی تواف است ببین یک توافت، هفت شوتست. شوت است شوت چه میگن شاو وقتی که از حج الاسود حرکت میکنید تا پاس که به حج الاسود میرسید یک دوره رو چی میگن شوت میگن و هفت تا یزرو چی میگن تواف میگن بله یک تواف هفت شوت است که باید یه هفت چیز بکنم در سری تا اولی هستی ها مثلا تو به شکل پالوانی شانهای بلند بلند میگیرن که چیست؟ چی میشه؟ خب، دیگه تو سوالایی، چی هست که مثلا یک جای هست، یک دیوارک هست؟ باید از بین از دیوارک تیر نشوی، از پشت از دیوارک تیر شمید؟ چرا که داخل دیوارک هم این میگن که شامل باید است. اگر در وقت تواف یک کسی پرسان کرده که اگر در وقت تواف آزان وزوش بشکنه چی کنه؟ اگر در وقت طواف وضو شکست مثلا چهار طواف کرده وضو شکست میره وضو خودم میکنه پس می باقی موندهش مونده وش چیکار میکنه طواف میکنه نه یعنی سر نمیگیره یعنی 3 درصدیشو میکنه یک طواف میشه اگر میگه در وقت طواف مثلا با طواف میکردم اذان داد خب وقتی که طواف اذان داده شد مردم به نماز رفتن یا میرن به نماز مثلا 5 طواف کرده اذان گفته شد میره به نماز دو تا ایشمان چطور کنه قامت صار مردم در جماعت استادنشان میگه توف را خطا بکنه در نماز استاشا پس که نماز خلاص شد دو تایی دگی خودم چی کنم بکنن این مسائل چیه است احتیاط چی رنه یعنی یک چیز است که مثلا کسی که احرامو بسته کنه این یعنی یک شانش همیشه لوش نباشه بسیار مردم مقوانستان شال است نمیذ نمیجه شانه خدا قول خدا لوش میکنه نه اون را دسمال در سر خود نمیگیره شانش پد نباشن تنها در وقت طواف باید نشانه راسش در او وقت مراسم باشه اون او وقت بازورا چیز میکنه لش میکنه دیگه دوها هست که مثلا باید دعاها را بخونه حاجی باید همیشه وقتی که طواف میکنه وقتی که عبادت میکنه در مراسم حج همیشه کوشش بکنه که اخلاص داشته باشه همیشه بخواد که دعا بکنه و انشاءالله من فکر میکنیم که من پیش پشما بود سبحان ربک الا رب بالذاتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین ولاقبت للمتقین سلام و سلام علی خیر خلقه محمد و علیه و آله اجمعین الایه تبارک و تعالی کسایی که امکانات دارن خداون توفیق نصیب بکنن که به حج برن الایه کسانی که امسال رفتن میتونه برشان خدا توفیق بر نصیب بک بک سالاینده بریم به خیر الایه که مریض دارن مشکل دارن ما بیچاره هستیم مسکین هستیم خدای توی عبادت های ما را قبول بکنیم الایه بالای مردم افغانستان رحمت بالای ما بکنیم. له ما به خانه تروج کردیم الوه عبادت های ما را قبول بکنی و در اینجا شش ششم احکام تو را بیان کردیم الوه هر کسی که گوش کرد و هر کسی که گفت و هر کسی که شنید و هر کسی که با قلب خود خواست که بفهم احکام اسلام و ما الوه در خانه تروج کردیم آمدیم الوه باساس حدیث شریف که کسی در خانه از خانه های خداوند جمع میشن و یاد خداوند میشه و احکام دین بیان میشه بالای زنا رحمت نازل میشه الوه بالای ما رحمت تنازل بکنیم. اللهی دشمنای اسلام را شکست نصیب اللهی إله آمریکا و ناتو را در افغانستان پیروز نسازی إله اونا را شکست نصیب وکنی در افغانستان إله آمریکایی ها را مثل روسا در افغانستان رسوا و شرمنده بگردونی نشانن إله حاجیان در خانه تو جمع میشه إله دعای های ما را قبول بکنی اللهی کسایی که تسلیم رفتن به حج داره بر از اونا خدا توفیق نصیب وکنی حج قبول بگردونی وشان توفیق اخلاص نصیب بکنی. الهی برشان توفیق بیتی که از بدعتها و علاق کردن گوزی رفایی آجی و گلار کردن انداختن و عزیر یا کاری ها خود دور بسازن الهی بر کل ما توفیق بیتی که در آخرین لحظات عمر که آخرین جمله زبان ما میبراید کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امني يا ربي لا تامنني لا تريك لك انا لك ربي انك انت لا تامنني لا تسيئني Let her move! الحمد و اني لا دعاء لك ربيك ربيك لا تشرك به احد ربك اللهم ربي ربي كلامك الحمد و اني لا دعاء لك لا و لا